با ویل پاولویچ به فکر تغییر دادن محل نبود و خدا میداند داند برای چه دیروز این سآل را از او کرده بود راستی بایستی فکر مقشوشی داشته باشد با اولین سوال از یک مغازه کوچک نزدیک میدان پوکروف هتل پوکروفسکی را در دو قدمی آنجا در کوچه ای به او نشان دادند وارد هتل که شد گفتن که آقای ترساتسکی ته حیات قسمت عقب در اتاقهای مبله ماریا سیسی ایونا کرده است هنگامی که از پلکان سنگی تنگ و کسیف و خیص طبقه دوم بالا می‌رفت، ناگهان صدای گریه ای شنید به نظر می‌آمد که دختری هفت یا هشت سال است گریهای دردناک بود صدای هقه, هقه خفه و دلخراشی شنیده می‌شد که با پای کوبی و فریادهای گوشخراش خراش و وحشتناک و صدای دورگه یک مرد تو هم بود به نظر می‌آمد که این مرد می‌خواهد طفل را ساکت کند و نمی‌خواهد کسی صدای گریه‌اش را بشنود اما خودش بیش از دختر سرا صدا می‌کرد فریادها وحشیانه بود و به نظر می‌آمد که طفل برای طلب بخشش استقاسه می‌کند وقتی ولچنینوف وارد دالان کوچکی شد که از هر جانب آن دو در باز می‌شد به زن جولیده بسیار بلند و چاقی برخورد از او پرسید پاول پاولویچ کجا سکونت دارد آن زن با انگشت به دری که پشت آن صدای گریه شنیده میشد اشاره کرد در صورت خشن و سرخ تیره این زن که چهل سالی داشت خشم آمیخته به نفرتی و ویدا بود در حالی که از پلکان پایین می رفت آهسته گفت همان کسیست که خودش را این طور سرگرم می کند. ویلچانینوف خود را برای کوبیدن در آماده کرد. اما فورا تغییر رعی داد و مستقیما در را باز کرد. وسط اتاق کوچکی که با بیسلیغگی اما با گشاد بازی از اساسیه نقاشی شده و بسیار ساده زینت شده بود. پاول پاولویچ که نیمه کار لباس بر تن کرده بود. بی و نیم تنه با صورتی برفروخته و خشمگین ایستاده بود و سعی می کرد با فریادها و حرکات و شاید هم با ضربات مشت خود ویلچانینوف این طور به نظرش آمد دختر بچه ای را ساکت کند که هشت ساله به نظر می آمد و فقیران لباس پوشیده بود اما مانند یک دختر خانم لباس سیاه بر تنداشت دختر بچه مثل این بود که دچار بحران یک بیماری عصبی شده است با عصبانیت حقق می کرد و دستهایش را به طرف پاول پاولویچ دراز می کرد مثل اینکه میخواست او را در آغوش بگیرد و ببوسد و طلب بخشایش کند و از او چیزی بگیرد بعد در یک لحظه همه چیز تغییر کرد همین که دختر بچه مرد ناشناس را دید فریاد کشید و به اتاق مجاور دوید و پاول پاولویچ پس از یک لحظه کتا که آشفته بود به زحمت تبسم می کرد درست مانند تبسم شب گذشته بود که وقتی که ویلچانینوف ناگهان در پلکان را به رویش گشوده بود و لبانش نقش بسته بود. با وضعی شگفت زده گفت آلکسی وانوویک، راستی نمیتوانستم منتظر باشم، اما بیایی تو، بفرمایید روی این نیم تخت. یا اگر بخوایید بهتر باشد، روی این صندلی راحتی و من... با اجل کوتش را پوشید اما نیم تنش را فراموش کرد بپوشد. تشریفات قائل نشوید، اما که هستید باشید. ورچنینوف روی یک صندلی نشست. نه، اجازه بدهید تشریفاتی به عمل بیاورم. من حالا معدبتر از پیش هستم. اما چرا در این گوشه نشستید؟ بیایید اینجا، صندلی راحتی نزدیک میز. آه، نه، من منتظر شما نبودم. منتظر منتظرتون نبودم. و روی لبه یک صندلی هسیری نشست نه در کنار ملاقات کننده غیرمنتظر بلکه صندلیاش را تاری چرخانید که درست رو به روی قرار گیرد چطور منتظر من نبودید با وجود اینکه دیروز به شما گفته بودم که امروز در این ساعت خواهم آمد فکر می کردم نخواهید آمد و چون در بیداری به آنچه که دیروز گذشته بود خوب اندیشیدم راستی از دیدار مجدد شما معیوس شدم در تمام این مدت ولچانی به اطراف خود نگاه می کرد اتاق درهم و برهم، تخت خواب نامرتب، و و لباس ها پراکنده بود روی میز فنجان هایی که در آن قهوه نوشیده بودند خورده های نان، یک بطری شامپانی نصفه، نزدیک آن یک لیوان در درهم و برهم قرار با گوشه یه چشمی یک نظر هم به اتاق مجاور انداخت. اما در آنجا سکوت هاک فرمایی می کرد. طفل در آنجا مخفی شده بود و جان بشی نداشت. ورچانینوف در حالی که بطری شامپانی را نشان می داد گفت یعنی yani ممکن است در این ساعت مشروب آشامیده باشید؟ پاول پاولویچ با تشویش گفت باقی منده است چجور تغییر کردی؟ اینها عادت بدی است که ناگهانی هم ایجاد شده دروغ نمیگویم درست بعد از آن تاریخ به این عادت دچار شده ام نمی از خودم جلوگیری کنم اما نگران نشوید الکسی وانوویچ الان من نیستم و مانند دیشب در منزل شما یاوهگویی نخواهم کرد اما آنچه به شما میگویم حقیقت هست. درست بعد از آن تاریخ به مشروب عادت کردم و اگر کسی شش ماه زودتر به من گفته بود که ناگهان تا این درجه تغییر خواهم کرد و اگر کسی تصویر امروزم را در ای به من نشان میداد، هرگز باور نمی کردم. پس دیروز شما مست بودید. پاول پاولویچ با صدای آهسته در حالی که چشمانش را به زیرف بود اعتراف کرد. مزد بودم. ملتفت میشوید این کار را به واسطه مستی کردم این وقای بعد از مستی هم رخ داد سعی می کنم مطلب را برای شما روشن کنم زیرا در خانه خودم بعد از مستی بدتر از این ها می شویم. الان تقریبا مستی کاملا از سرم پریده است اما درندگی و یک نوع دیوانگی با من دست به گریبان است و در این حالت از درد خودم بسیار امیقتر متحصر می شویم. شاید همین مطلب است که مرا مجبور به مشروب خوردن میکند آن وقت هر کاری از من برمیآید میتوانم بدترین دیوانگی ها را مرتکب شوم و حتی دعوایی راه بیندازم لابد دیشب خودم را جور عجیبی به شما معرفی کردم حتما چیزی به خاطرتان نمانده است چطور به خاطرم نمانده همه چیز را به خاطر دارم ولچنینوف که لحنی آشتی کننده داشت گفت می بینید. درست همینطور است طور که فکر کردم و وقایی را برای خودم موشه کافی کردم. به علاوه خود من هم دیروز کمی نسبت به شما متغیر شدم و بسیار بیهوسلگی به خرج دادم. این موضوع را با کمال میل اعتراف می کنم. گاهی خودم را زیاد سالم حس نمی کنم و ملاقات غیرمنتظره شما در دل شب بله در دل شب در دل شب و پاول پاولویچ سرش را تکان داد. مثل اینکه متعجب است و خودش را سرزنش می کند آخر چه چیز مرا به این کار واداشت؟ اگر خودتان در را به روی من باز نکرده بودید، به هیچ قیمتی داخل نمیشدم و برگشته بودم. الکسی وانوویچ، تقریبا یک هفته پیش هم به منزل شما آمدم اما شما را نیافتم. و بعد شاید هرگز بر گشتم من در عین حال یک نوع غروری هم دارم. الکسی وانویج. هرچند که خودم اعتراف میکنم که در همچو حالتی بودم ما در کوچه به یکدیگر برخوردیم اما من به خودم میگفتم حالا که او مرا نمیشناسد و روی خود را برمیگرداند نه سال چیز کمی نیست و تصمیم نداشتم به شما نزدیک شوم دیروز به ناحیه پترزبورگسکی آمده بودم و ساعت را فراموش کرده بودم به علت این بطری را داد و همچنین به علت احساساتم کار احمقانه است بسیار احمقانه و اگر این کار با دیگری غیر از شما انجام گرفته بود زیرا شما با وجود خاطره ترخدی دیشب به یاد ایام گذشته نزد من آمده اید من هیچ نوع امیدی نداشتم که رشته شناسایی را دوباره پیوند دهم فرچانی با دقت گوش میداد این مرد حالتی داشت که به نظر سمیمانه می آمد و حتی با یک نوع وقار و متانت حرف می زد. و با وجود این ویلچانینوف از آن لحظه ای که داخل اتاق شده بود یک کلمه از حرفهایش را باور نمی کرد. بگویید ببینم پاول پاولویچ پس شما اینجا تنها نیستید. این دخترکی که لحظهی قبل او را نزد شما دیدم کیست؟ پاول پاولویچ بسیار تعجب کرد و ابروهایش را بالا کشید. اما با این همه نگاهی سریح و مهربان به ویلچانینوف کرد و با لبخندی ملایم گفت چطور؟ این دختره کیست؟ این لیزا لیزاست؟ و ویلچانینوف با لکنت زبان گفت کدام لیزا؟ و ناگهان چیزی در خاطرش بیدار شد ضربت بسیار شدید بود لحظه پیش انگامی که وارد اتاق شده بود و لیزا را دیده بود متعجب شده بود اما هیچگونه احساس قبلی یا فکر به خصوصی در این مورد در او ایجاد نشده بود همان لیزای خودمان دخترمان و پاول پاولویچ به خنده افتاد ویلچانینوف با ترس و بدگمانی و صدایی بسیار گرفته پرسید کدام دختر؟ آیا شما و ناتالیا و... مرحوم ناتالیا وسیلیفنا بچه دار هم شدید؟ چطور نشدیم؟ آه خدایا، راستی چطور ممکن بود شما را از این موضوع ما کرد؟ چرا حواظم پرت است؟ بعد از رفتن شما خداوند او را به ما ادا کرد پاول پاولویچ مثل این که در معرض یک نوع حیجان مطبوعی قرار گرفته باشد از روی صندلیاش پرید. بلچانینوف با رنگ پریده گفت من از این موضوع هیچ اطلاعی نداشتم. پاول پاولویچ با صدای ملایم و دلپذیر تکرار کرد. مسلما مسلما چطور میتوانستید با خبر شوید؟ شما خودتان به خاطر دارید که آن مرحومه و من هیچ گونه امیدی نداشتیم و... ناگهان خداوند نظر لطفش را شامل حال ما کرد و فقط خدا خودش میداند که در آن وقت چه چیزها حس کردم به نظرم میاد که این واقعه درست یک سال بعد از رفتن شما واقع شد شاید یک سال هم نشد خیلی کمتر بود صبر کنید اگر حافظم یاری کند شما در ماه اکتبر رفتید یا در نوامبر من از شهر ته در اوایل سپتامبر دواززدهم سپتامبر رسیمت کردم کامل به خاطر دارم پاول پاولویچ شگفت زده گفت در سپتامبر یعنی همچه چیزی ممکن است اه... اه... چرا حواسم پرت است اگر اینطور باشد پس بگذارید ببینم سپتامبر اکتبر نوامبر، دسامبر ژانویه فوریه مارس آفریل کمی از هشت ماه بیشتر می شود و اگر می دانستید چگونه آن مرهمه. ولچنینوف با صدایی بریده بریده مچ کنان گفت او را به من نشان بدهید پس او را صدا کنید چشم و با کمال میل پاول پاولویچ از آنچه که میخواست بگوید مثل اینکه آن وقت اش میدانست خودداری کرد مسترب شده بود چشم، چشم، الان او را به شما معرفی میکنم و با عجله به طرف اتاقک لیزا روان شد. سه یا چهار دقیقه گذشت. از اتاقک صدای نجوای خیلی سریعی به گوش می رسید. صدای لیزا به زحمت تشخیص داده میشد شد. فكر فکر کرد دخترک دارد التماس می کند که مجبورش نکنن میرون بیاید. و بالاخره آمدند. پاول پاولویچ که کاملا آشفته شده بود گفت اینا اینقدر محجوب است اینقدر متکبر است. چقدر به آن مرحومه شبیه است؟ لیزا دیگر گریه نمی کرد، اما همانطور چشمانش را به زی بود. پدرش دست او را گرفته بود و می آورد. دخترکی بود باریکندام اندام و لاغر و بسیار زیبا. با تندی چشمان دراشت آبیش را به ملاقات کننده خیره کرد. با حالتی گرفته او را ورانداز کرد و دوباره نگاهش را به زی رفکند. نگاهش سنگین و با بود همچون نگاه فالی بود که وقتی تنها با ناشناسی رو برو به گوشهی می, به گوشه می خزند و از آنجا با متانت ملاقات کننده ای را که هرگز تا به حال ندیدند می نگرند. اما از این نگاه شاید هم فکر کاملا بچگانه ای تراواش به نظر ولچانی اینطور این طور آمد پدر دخترک را با خودش جلو آورد. این آقا عموی توست که سابقا با مامانت آشنا بوده. او دوست ما بوده ترس. به او دست بده. دخترک کمی خم شد و با ترس دستش را دراز کرد. پاول پاولویچ در حالی که با دقت ولچانی را ورنداز می کرد توضیح داد. ناتالیا وسیلی نمیخواست مراسم احترام گذاردن را به او یاد بدهد و الا او باید مثل انگریسی ها کمی خم بشود و دستش را به طرف ملاقات کننده دراز کند. ولیچانینوف می دانست که پاول پاولویچ او را با دقت می نگرند. اما دیگر در فکر این نبود که استراب خود را پنهان کند همانطور که روی سندلیش نشسته بود بی حرکت دست لیزا را در دست گرفته بود و با ولعی تمام او را ورانداز می کرد. لیزا بسیار نگران به نظر می آمد و همانطور که دستش را در دست ملاقات کنند رها کرده بود پدرش را از نظر دور نمی داشت آنچه را که او می گفت با کم بلچانی با این چشمان آبی دراشت آشنا بود. چیزی که عجیب بود و بیشتر او را تحت تاثیر قرار داده بود سفیدی لطیف پوست و رنگ موهایش بود. برای او همه اینها بسیار پرمعنی بود. برعکس بیزی بودن صورت و خمیدگی لبهایش به شدت ناتالیا وسیلی را به خاطر می آورد. و حالا پاول پاولویچ داشت با حرارت و استرابی بی اندازه چیزی می گفت اما ورچنینوف چیزی نمیشنید. پاول پاولویچ دنبال آخرین جمله خود را گرفت الکسی ایوانوویچ شادی و سروری را که موهبت الهی به ما داد حتی توانید تصور کنید به محض تولدش دیگر همه چیز من شده بود و به خدا گفتم اگر یک وقت مشیت الهی بر این قرار گیرد که خوشبختی آرام من به هم بخورد عقلن لیزا برایم خواهد ماند در هر حال از این موضوع کاملا اطمینان داشتم ناتالیا وسیلیفنا چطور؟ ناتالیا وسیلیفنا؟ <تصفيق> شما او را خوب می و او را به خاطر میآفرید اصلا دوست نمی داشت احساساتش را زیاد آفتابی کند اما وقتی در بستر مرگ از او خداحافظی می کرد آن وقت همه چیز واضح شد آنچه که هم الان به شما می گویم، در بستر مرگش واقع شد آنچه که اتفاق افتاد از این قرار بود یک روز قبل از مرگش ناگهان عصبانی و مضطرب شد گفت میخواهند او را با این دواهای جورواجور بکوشند در صورتی که فقط یک تبه ساده دارد می گفت پزشکان چیزی نمیفهمند و وقتی که برگردد او را به خاطر دارید پیر پزشک افسر در مدتی کمتر از دو هفته او را چاق و سالم خواهد کرد و باز هم بگویم پنج ساعت قبل از اینکه تمام کند یادش افتاد که سه هفته بعد برای جشن تولد لیزا باید حتما پیش امه مادر تعمیدی لیزا به کمک او برود ولچانی نف بی این که دست لیزا را رها کند ناگهان بلند شد در میان همه ی وقایه به نظرش رسید که در نگاه سوزان طفل که به پدرش دوخته شده بود چیزی سرزنش مانند نه است و با صدای عجیبی تند پرسید نکند مریض باشد پاول پاولویچ با دلسوزی بسیار انگیزی گفت به نظر نمی آید اما حوادث و اتفاقات چون این مخلوقی را ساختند تفلو است حتی قبل از این حوادث هم عصبانی بود بعد از مرگ مادرش دو هفته مریض شد مرض سر دارد لحظه قبل که شما وارد شدید چنداز اشک ریخت خدا می‌داند. میشنوی لیزا؟ میشنوی آخر چرا این کارها را می چون بیرون می روم و او را تنها میگذارم و این موضوع ثابت می کند که او را دیگر به اندازه زمان زنده بودن مادرش دوست ندارم این از آنچه که او مرا به آن متهم می کند در مغز چنین بچه ای که بایستی فقط با عروسکهایش بازی کند چه افکار عجیبی میتواند تواند جولان داشته باشد در اینجا هیچ کس نیست که با او بازی کند چطور؟ در اینجا شما دو نفر تنها هستید؟ مطلقاً تنها. خدمتکار هم روزی یک بار میآید و کار منزل را انجام میدهد. و وقتی شما بیرون میروید او را تنها می گذارید پس چه بکنم دیروز وقتی بیرون میرفتم او را حتی در این اتاقک حبس کردم و به همین علت بود که امروز این همه اشک ریخت اما چه بکنم شما خودتان قضاوت کنید همین سه روز پیش بود که او تنها توی حیات رفته بود و گذشته از این از ته دل گریه می کرد و از هرکس می پرسید من کجا رفته‌ام این کار راستی کار خوبی نبود. درست است که من هم مستحق سرزنش هستم. به قول خودم برای یک ساعت خارج میشم و تا فرد و صبح برنه همانطور گردم. که دیروز اتفاق افتاده بود. خوشبختی در این بود که صاحب هتل در مدت غیبت هم توانسته بود به وسیله یک گفرساز در اتاق را باز کند. چقدر خجالت آور است. کار من مثل کار دیو است. تمام اینها به علت این است که مقسم آشفته. طفل آشفته با خجالت گفت پاپا خوب دوباره از نو شروع کردی یک دقیقه پیش به تو چه گفتم لیزا وحشت زده در حالی که دستهایش را به طرف او دراز کرده بود پشت سر هم تکرار می کرد دیگر این کار را نمی کنم با با بیحسلگی با لحنی عامران کرامش را برید شما با چنین داخلی نمی توانید به زندگانی ادامه دهید با این اینکه ثروتمند هستید چطور میتوانید این محیط و این خانه را تحمل کنید این خانه؟ شاید تا یک هفته دیگر بروم تا به حال پول زیادی خرج کرده این و اگر هم ثروتمند بودیم ولشانینوف که کاسه صبرش لبریز شده بود حرف او را برید بسیار خوب کافی است کافی است انگار میخواست بگوید حرف زدن بیفایده است آنچه را که می بگویی میدانم میفهمم برای چه مقصودی این را می و گفت؟ گوش بدهید ببینم پیشنهادی دارم شما الان گفتید یک هفته و شاید دو هفته اینجا خواهید ماند من خانه ای دارم یعنی خانواده ای که خانهشان کاملا مثل خانه خود من است اکنون بیست سال است که با هم آشنا هستیم. پوگرل سفر را می گویم الکسان پالوویچ از عضو شورای مهرمانه، حتی به درد کار شما هم میخورد. آنها الان در علاق در ویلای باوه خود به سر میبرند کلاف دیا پتروونا پاگورلتسف درست مثل خواهر یا مادر من است هشتا بچه دارند لیزا را به من به سپاری تا فوراً او را آنها ببرم نباید وقت را از دست بدهیم با خوش از او پذیرایی خواهند کرد مثل دختر خودشان عزیز خواهند داشت بلچانینوف دست خوش بیحسلگی عجیبی شده بود و آن را مخفی هم نمی کرد. پاول پاولویچ با ترش رویی و در حالی که بدزاتانه از زیر چشم به مینگری است به نظر ویرچانینوف اینطور آمد. گفت واقعا این کار غیر ممکن است. چرا؟ برای چه غیر ممکن است؟ خب پس چه؟ با این وز بیایم و این تفره را رها کنم. درست است که موافقم او را به یک دوست حقیقی دوستی مثل شما بسپارم. اما چطور او را در خانواده ناشناسی رها کنم که از طبقات بالای اجتماع هستند و حتی نمیدانم به چه ترتیبی او را خواهند پذیرفت. ورچنینوف که تقریبا خشمگین شده بود فریاد کشید: آخر هم الان به شما گفتم که خانه ی آنها مثل خانه ی خود من است. یک کلمه از طرف من کافی است که کلافدیا پتروفنا او را با خوشحالی بپذیرد. مثل اینکه اگر او دختر من بود، خدا لعنتتان کند. خودتان خوب می دانید که همه اینها را فقط برای اینکه که حرفی کرده باشید میگویید حالا جای ما شاجره نیست و پایش را به زمین می کوبید. من به این علت رازی نیستم که شاید این کار به نظر عجیب بیاید در هر حال بایستی لاقل یکی دو بار بروم و از سلامتی او خبر بگیرم و الا چه خواهند گفت؟ تفله بی پدر؟ و در چنان منزل اشرافی؟ ولشانینو فریاد کشید؟ ولی خانه آنها خانه بسیار ساده است و ابدا اشرافی نیست به شما گفتم که بچه زیاد دارند و او جان دوباره خواهد یافت آنها برای پذیرفتنش از هیچ کاری رویگردان نیستند اگر بخواهید همین فردا خودم شما را به آنها معرفی خواهم کرد. برای اینکه از آنها سفاس گذاری کنید فقط لازم است به آنجا بروید. اگر مایل باشید هر روز می توانیم پیش آنها برویم ولی با وجود این یا وگویی کافی است وانگهی شما خودتان هم میدانید، گوش کنید امشب پیش من بیایید اگر خواستید شب را هم آنجا بگذرانید و فردا صبح برای اینکه سر ظهر آنجا باشیم صبح بسیار زود حرکت خواهیم کرد چقدر خیرخواه هستید حتی شب را هم پیش شما بگذرانم فوراً پاول پاولویچ قبول کرد بسیار متاثر به نظر می‌آمد شما راستی لطفه بزرگی درباره من میکنید خب ویدای آنها کجاست؟ در لیزنوی ازنای آخر لباسهایش چه؟ فقط همین اشکال وجود دارد زیرا در یک خانواده بزرگ و همچنین در ییلاق خودتان میدانید قلب یک پدر چه لباسهایی؟ مگر او عزادار نیست؟ آیا میتواند چیز دیگری بپوشد؟ مناسب تر از این لباس نمی شود. تصور کرد فقط یک پیراهن نازک و یک روسری لازم دارد روسری و پیراهنی که به داشت بسیار کثیف بود بله فوراً حتماً باید لباسش را عوض کند و پاول پاولویچ می لرزید لباس شور و شور هم لازم دارد آن را هم باید فوراً فراهم کنیم لباس هایش را دادم ماریسی سیفنا بشوید ولچانینوف کلامش را برید باید فرستا درشگه هم پیدا کنند و اگر ممکن است خیلی زود باید این کارها را انجام داد. اما ناگهان هم به مانعی برخوردند. لیزا جدن با این پیشنهاد مخالفت کرد. با وحشت همه ی صحبتها را گوش داده بود. و اگر ولچنینوف هنگامی که پاول پاولویچ را قانه کرده بود فرصت یافته بود که به دقت به دخترک بنگرد در این چهره کوچک نامیدی بیرون از حدی را. دخترک با صدایی آهسته ولی محکم گفت: نمیروم. آها، آها می‌بینید؟ درست مثل مادرش. لیزا فریاد کشید: من مثل مامان نیستم، مثل مامان نیستم. نامید شده بود. دست های کوچکش را به هم می‌مالید، مثل این بود که می‌خواست در برابر پدرش خود را از این اتهام مخوف که شبیه مادرش است، مبرا سازد. پاپا پاپا اگر شما مرا ول کنید، و ناگهان خود را به طرف ورچانینوو که وحشت زده شده بود پرتاب کرد. اگر شما مرا با خود ببرید من اما فرصت نیافت بیش از این چیزی بگوید. پاول پاولویچ دستش را گرفت و با خشمی که ساختگی هم نبود، یقه پیراهنش را گرفت و او را به طرف اتاق کشانید. دوباره صدای نجوا و گریه خفه بلند شد. ولشانینوف خودش را حاضر می کرد که داخل شود اما پاول پاولویچ با لبخندی ساختگی پیش آمد و به او اطلاع داد که لیزا الان خواهد آمد. ولچینوف کوشش میکرد به او نگاه نکند و چشمانش را برمیگردانید. در همان وقت ماریسی سیسیونا همان زنی که در دالان به او برخورده بود وارد شد. لباس را که آورده بود در یک کیف کوچک قشنگ سفری که متعلق به لیزا بود داد و از ولچینوف پرسید: شما همان پدر ای هستید که دخترک را با خودتان خواهید برد شما خانواده دارید کار بسیار خوبی می کنید. او را از جهنم نجات می داید. پاول پاولویچ زیر لب گفت آه شما مریه سیسیفنا خب که چه مریه سیسیفنا آیا خانه تا جهنم نیست؟ آیا شایسته از دختر بچهی که دیگر بد و خوب چیزها را می فهمد این کسافت کاری ها را ببیند؟ برای شما پدر خوانده درشگی ها وردند به لیز می روید نیست؟ بله، بله، خیلی خوب، سفر به خیر. لیزا با رنگ پریده و چشمانی به زیرفکنده از اتاقش بیرون آمد و کیف سفریش را گرفت حتی یک بار هم چشمانش را به طرف ویلچانی برنگردانید نگردانید. نه تنها برای بوسیدن پدرش همانطور که اغلب عادت داشت جلو نرفت بلکه با او خداحافظی هم نکرد. واضح بود که نمی‌خواهد به او نگاه کند. پاول پاولویچ به عادت خود او را در آغوش گرفت و سر کوچکش را بوسید. در این لحظه لبهایش لرزید و چانه اشتکان خورد. اما دخترک چشمان خود را بلند نکرد. پاول پاولویچ رنگش پریده بود. دستهایش میرزید. هر هرچند کوشش میکرد به او نگاه نکند. حال او را دید. تنها آرزویش این بود که هرچه زودتر از آنجا بیرون برود. فکر میکرد. اما راستی همه اینا نتیجه خطاکاری های من است باید اینطور باشد. پایین آمدند. لیزا و ماریا سی یک دیگر را در آغوش گرفتند آنگاه فقط از توی که دخترک چشمانش را به پدرش دوخت ناگهان دستهایش را به هم وصل کرد و فریاد کشید یک ثانیه بیشتر طوب نکشید و دخترک خودش را به طرف پدرش اندارد اما اصبها به راه افتاده بود.